آن سیاه چرده که شیرینی آلم با اوست چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی او سلیمان زمان است که خاتم با اوست گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی او سلیمان زمان است که خاتم باوست روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک لاجرم حمت پاکان دو آدم باوست خال مشکین که بدان آرز گندم گون است سر دانه که شد رفزن آدم باوست دلبرم ازم سفر کرد خدا را یاران چه کنم با دل مجروح که مرهم با باکه این نکته توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را و دم ایسی مریم با حافظ از معتقدان است گرامی دارش زن که بخشایش بس روح مگرم با او.